بسم الله الرحمن الرحيم خبر قول الصحابين توزيدات واما الأخبار وأما أخبار كجمع است فالخبر ما يدخله الصدق والكذب خبرني ك صدق و دروغ در شوارد والخبر ينقسم إلى قسمين وخبر بر دو قسم تقسیم میشه حدیث بر دو قسم تقسیم میشه آحاد و متواتر آحاد و متواتر این تقسیم بندی جمهور محدثین هست فالمتواتر ما یوجب العلم متواتر اون هست که افاده علم میکنه علم ضروری و بعضی میگن علم نظري خوب. فالمتواثر ما يوجب العلم متواثر وليك علم ووجود ميكنه يعني نزعنه. وهو هذا تعريف شو ميكونه كمتواثر تهست. وهو أن يروي جماعة. لا یقع التَّوَاطُعُ عَلَ الكذب ان مثل هم متواترونیه که روایت کنه اونو گروهی جماعتی که تواتو اتفاق, اتفاق اتفاق بر کذب ازشون واقع نشه گروهی باشند که توافق بر دروغ ممکن نباشه ان مثل هم روایتش بکنند از مانند خودشون گروهی از گروه دیگر مانند خودشون روایت بکنند و هاکذا الى ان ینتهه الى المخبر عنه. همینطور ادامه داشته باشه این گروه از اون گروه اون گروه از اون گروه, از اون گروه, از اون گروه تا برسه به مخبران اونی که خبرو گفته از اول سند تا انتهاش ويكونوا في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وأصل خبر متواترهم حسي باشه، أستدريج مشاهديا شنيدا باشه، عن راه اجتهاد نباشه. بس تواتو همون توافق هست اتفاق هست تواتر به معنی پی در پی اومدن هست و معنیش رو گفت خب با این تعریفی که خوندیم خبر متواتر چندین شرط باید داشته باشه یک باید جماعتی اون رو روایت کرده باشه عدد زیادی باشه حالا بعضی تعدادو تعیین کردند ولی به ای باشه تعداد که توافق بر دروغ نباشه دو عادتا امکان اتفاق بر دروغ بینشون نباشه لا و تواتو و الكذب که در تعریف آورده بود. سه ان هم. این تعداد و جماعت باید از ابتداد تا انتها باشه. از زمانی که نویسنده کتاب میاد این حدیث رو مینویسه تا پیغمبر باید این جمع در تمام طبقه ها باشه. و مستند خبرشون اصل خبرشون مشاهده فعل پیغمبر یا سخن پیغمبر باشه مالون بگن ما شنیدیم ما دیدیم نه اجتهادی باشه اینا شرایط متواتر بودند و متواتر هم علم میرسونه زنو نمیرسونه حالا این که علم ضروری یا علم نظری ارجه شمین هست که علم ضروری و بعد از اینکه متواتر گفت احادو ادامه ایجا هو الذي یوجب العمل و لا یوجب العلم احاد که جمع است، از وحادا گرفته شده که وقت ابتل به همزه شده هو الّذی یوجب العمل عمل و واجب میکنه، ولا یوجب العلم و علم واجب نمی زنی هست خب تعریفش چه هست؟ آهد که دیگه متواتر نباشه یعنی اون شرایطی که متواتر داشت آهاد نداره پس خبر آحاد عمل به آن واجب است حالا اگر خبر باشه باید تصدیقش کرد و اگر طلب باشه باید عملیش کرد وينقسم یعنی او و, و تخصیم میشه الى مرسل و مصند به مرسل و مصند و مرسل چیست و مرسند چیست تاریخ میکنه فالمصندو مطسل اسنادو مسندان است که سندش متصل باش یعنی سندش تا پیغمبر متصل باشه. و ما مالا یتصل اسناده و مرسلونی که سندش متصل نباشه فا کان كانه... البته این سند متصل نباشه بستگی داره در کدوم قسمت متصل نیست؟ اگر در اون قسمت صحابی باشه که بهش میگن مرسل ولی اگر در این ابتدا باشه که بهش میگن معلق اگر دو تا پشت سر هم افتاده باشه که بهش میگن معزل خلاصه این مرسل رو داره تعریف می‌کنه یعنی همونی که از این سمت رسول الله افتاده باشه ربع فان کان والمرسل ما لم يتصل اسناده والمرسلون است که سندش متصل نباشه فان كان من مراسیل غیر الصحابتي فلیس بحجه اگر مرسل از مرسل غیر صحابه بود یعنی اونی که مرسلو انجام داده بود اونی که حدیث نسبت داده بود به پیغمبر صحابه نبود تابعی اومده بود این کارو کرده بود یعنی صحابی رو حذف کرده بود تابعی بیاد بگه من از پیغمبر شدیدم این میشه دیگه مرسل میگه اگر از مرسلهای غیر صحابه بود فلیسه به همچنین مرسلی حجت نیست الا مرسیل سعید ابن المسیب جز مرسلهای سعید ابن المسیب با وجود این است. اینو استثناء کرده چرا میگه فئنها فقطش چون مرسلهای این صحابی تفتیش شدند فوجودت مسانید عن النبی بعد از تفتیش مشخص شده که سند چون وصل بوده سند داشتن پس این مرسلی که اینجا تعریف کرد استاد این مرسلی بود که اصولیون تعریفش میکنند و مرسلی که ما گفتیم مرسلی بود که محدثین تعریفش میکنند خب تا اینجای ای کار بحث آهاد هم تموم شد در رابطه با مرسل البته اختلافاتی هم موجود داره علما فرق قائلا اولا بین مرسل صحابه و تابعی در هر دوتا اختلافاتی وجود داره در هر دوتا اختلافاتی وجود داره مصنف گفت که مرسل غیر صحابی حجت نیست چون بعضی حجتش میدونن. مثلا امام مالک امام ابو حنیفه و احمد مرسل و قبول میکنن زماني كه مرسلش انسان الثقى باشه شون ميگن الثقى فقط الثقى ارسال میکنه مرسل میکنه و بس ديگه كه مرتبط به اخبار هاس مرتبط به هدیث هاس والعنانتو تدخلو على الاناصيد على الاصانيد عنعنه که از سیغه های عدا کردن حدیثه داخل در سندها میشه اثانید جمع اسناد و سنده و ان انا یعنی چی؟ ان انا یعنی این که حدیث رو با لفظ ان رواد کنند ان زید ان بکر ان فلان ان فلان دیگه صراحتا نگه شنیدم یا حدسانی یا تو یا حدسانه با ان روادش کنند به این نوع سیغه میگند اگر با سیغه ان فلان انفلانن انفلالن ان روایت شد بشمیدن ان انش خوب این ان مورد قبول هست مگر از مدلس اگر مدلس باشه داستان جداست در غیر این صورت هیچ مشکل ندارد و بزرگترین کتب هم سندی که با سیغه انعن ان روایت باشه درشون وجود داره در بخاری، در مسلم اما اگر مدلس بود داستان جداست از مدلس زمانی روایت میشه که با سیغه های سریح روایت بکنه والعنانة تدخل على, على الأسانية عنانة داخل در سند مشه وإذا قرأ الشيخ زمان كي الشيخ حديث وخون برشاقرد يجوز للراوي جائزة كالراوي با انسيقه حديثو أدا بکنه حدثني أو أخبرني وإذا قرأ هو على الشيخ اما زمان كي روايطو شاگرد بر استاد بخونه میگه که اخبرنی دیگه ولا یقولو حدثنی و نمیگه میگه حدثنی این فرق حدثنی و اخبرنی هست چه استاد بر شاگرد بخونه چه شاگرد بر استاد میگه که اخبرنی اما حدثنی فقط زمانی میگه که شیخ بر استاد حدیثو بخونه میگه اجازهش و این اجازه از شیخ من غیر قرائتی فقول اجازه من و اخبرنی اجازه و زمانی که شیخ اجازه داد شاگرد برای روایت بدون اینکه برش بخونه بدون اینکه خواندنی در کار باشه این بر اون بخونه یا اون بر این اون موقع میگه اجازه و اخبرنی اجازه این قید رو ذکر میکنه اجازه رو شد از مختصر مختصر بحث حدیث تا اینجای کار کافی است پس انعنی رو که آورد اگر راویش مدلس نباشه کاملا مرده قبول هست موفق پیروز باشید